موولدی اومی رجب شصد روز صبح همین که سپید زد، همراه شمس از خانه بیرون آمدید. مدتی در دشت و چمنزار میان سارها اسب دواندیم و از هوای صبحگاهی لذت بردیم. مترسکها که نزدیک شدنمان را می دیدند، از میان مزاره گندم به ما سلام می کردند. رختهایی که جلو خانهای روستایی روی تناب پن کرده بودند، دیوانوار موج برداشتند. سپس شمس افسار اسبش را کشید و به درخت بلوطی در دوردست اشاره کرد. زیر آن درخت نشستیم و آسمان را نظاره کردیم که رنگش به سرخی میزد. از دور صدای اذان که آمد، شمس خرقه اش را روی زمین پهن کرد کنار هم به نماز ایستادی بعد از نماز موقع دعا نه فقط برای خودمان بلکه برای همه انسانها خوشی و سلامتی آرزو کردیم. قاعده بیست و ششم. کائنات وجودی واحد است همه چیز و همه کس با نخی نامرئی به هم بستند. مبادا آه کسی را براوری. مبادا دیگری را به خصوص اگر از تو ضعیف تر باشد بیازاری. فراموش نکن که اندوه آدمی تنها در آن سوی دنیا ممکن است همه انسانها را اندوه گین کند. و شادمانی یک نفر ممکن است همه را شادمان کند شمس زیر لب گفت به قونیه که رسیدیم زیر این درخت نشستم اینجا با روستایی بی آشنا شدم شیفته تو بود شنیده بود موعزهایت اندوه را می راند گفتم آن وقتها به من می می‌گفتند صراف سخن اما آن روزها دیگر گذشته دیگر نه دل و دماغ موعظه دارم نه خطبه بخوانم حرفی برایم نمانده شمس گفت باز صراف سخن میشوی اما با یک فرق قبلن عقلت موعظه کرد از این به بعد دلت ترانه میخواند. من منظورش را نفهمیدم و نپرسیدم فلق رسوبات شب را پاک کرده و لایهی نارنجی و پاک بر آسمان کشیده بود پیش چشمانمان شهر داشت بیدار می شد چلاقها به جالیسها حجوم می بردند اجاقها روشن می شد. بچه ها دست و صورتشان را میشستند و همه برای روزی تازه آماده میشدند. شمس با صدایی گرفته گفت: همه جای ارس انسانها در پی بختیاریاند و میخواهند کامل شوند. اما راهنمایی معنوی ندارند. کلمه‌های تو به آنها کمک خواهد کرد. راهشان را روشن خواهد کرد من هم در این راه خدمتکارت خواهم بود اعتراض کردم گفتم این چه حرفی است؟ تو دوست منی؟ شمس بیان آنکه به اعترازم اهمیت بدهد ادامه داد تنها نگرانیم پوسته است که درونش پنهان شده ای آدمی مشهور و مقتدری طرفدارهای زیادی دور و برت را گرفتند اما انسانهای عادی را چقدر می شناسی؟ بدون شناخت سقوط کردهها و رانده شدهها نمیشود جامعه را شناخت میتوانیم مستها گداها دزدها روسپیها قماربازها فراموش شده ها، انگ خورده ها، خلاصه همه مخلوقات خدا را دوست بداریم؟ آزمونی دشوار است. کمتر کسی از پس این امتحان برمیآید. آید. همانطور که صحبت می کرد، در چهرهش محبتی پدرانه و ویدامی شد. نباید چیزی را پنهان می کردم. گفتم درست است. همیشه کسانی دور و برم بودند و از من محافظت کرده‌اند. نمیدانم سقوط کرده های این جامعه چگونه زندگی میکنند. شمس خم شد، مشتی خاک برداشت. از میان انگشتانش کم کم به زمین ریخت. بعد دوباره خم شد و تکی چوب برداشت. با تک چوب دایره بزرگ دور درخت بلوط کشید بعد دستهایش را رو به آسمان بلند کرد انگار منتظر بود دستی نامرئی به حرکت درآوردش سپس شروع کرد به چرخیدن درون دایره در حال چرخ زدن اسماع حسنا را می شمرد ابتدا آرام و آهسته با رقت و دقت. بعد از خود بی خود انگار هماهنگ با آهنگی تند شونده با قدرتی مافوق انسانی چرخید و چرخید و چرخید. تمام کائنات و همه ستارگان و همینطور ماه با او به سما پرداختم. موقع تماشای این رقص فوقالعاده نتوانستم بر اشک چشمم حاکم شوم. رهایش کردم تا تلسم این لحظه وجد هم روحم را دربر بگیرد هم تنم را. سرانجام شمس از سرعتش کاست و ایستاد. همانطور که بریده بریده نفس میکشید با صدایی خفه طوری که انگار از قیب خبر آورده باشد گفت روزی می رسد که به تو شاعر عشق بگویند. انسانهایی از شرق، از غرب، از شمال، از جنوب انسانهایی که حتی صورتت را ندیده اند، از کلمه الهام، فیز و جسارت خواهند گرفت. باور کردنش سخت بود. پرسیدم همچو چیزی چطور امکان دارد گفت نه با درس و موعظه با شعر گفتم با شعر آخر من شاعر نیستم شعر نمیگویم من عالمم با علم و عرفان سر و کار دارم نه با شعر شمس لبانش را مختصری جمع کرد گفت، دوست من، تو از بزرگترین شاعرانی هستی که به این دنیا آمده اند و بعد از این خواهند آمد. حوصله بحث نداشتم. گفتم، حالا گیریم حرفت درست. هر کاری که لازم باشد، باید با هم انجام بدهیم. در این هنگام شمس سکوت کرد. خاموشی شوم همه جا را فرا گرفت، نگاهش را از من دزدید، با اصرار پرسیدم چه شده، از چیزی ناراحت شده ای؟ سرانجام به سختی انگار که بخواهد اعترافی بکند لب به سخن گشود، گفت دلم می خواهد در این راه تا آخر همراهت باشم اما نمیتوانم، ای دارم، همیشه نمیتوانم پیشت بمانم، باید بروم. با دست پاچگی پرسیدم، این چه حرفی است؟ کجا میخواهی بروی؟ هیچ جا نمیتوانی بروی. شمس لبهایش را به هم فشرد، گفت دست من نیست. ناگهان بادی به سویمان وزید. هوا یک دفعه سرد شد. آن لحظه در آنجا موسم پاییز انگار که با چاقو بریده باشندش به پایان رسید. از آسمان پاک و درخشان نمنم نم باران به روی من باریدن گرفت. در آن لحظه برای اولین بار این فکر چه روزی شمس ترکم می کند و از پیشم میرود با همه تیرگیش از ذهنم گذشت و این فکر چنان آزردم که دلم گرفت سینم به درد آمد انگار که کیسه کیسه بار بر رویم گذاشته بودند سرم را برگرداندم نتوانستم به چشمهایش نگاه کنم.